یه رو من از یه سری کانسپت های بلنس اسکور کارت گفتم کانسپت های اصلی و مفاهیم اصلی بعد یعنی استراتژی شیت خودمون شیت استراتژی؟ اوکی؟ ما توی شیت استراتژی هدف اصلیمون چی بود حالا چه تو استراتیجی های کلان شرکتی چه تو استراتیجی های تجاری هدفمون چی بود؟ لیست استراتژی هایی رو که مد نظرمونه در یک سازمان رو در بیاریم که تو استراتژی کلان شرکتی رو اومدیم از ابزارهای مختلف استفاده کردیم مثل سوات مثل اسپیس مثل bcg مثل گراند و انالیسیس ماتریس که اومدیم استراتژی هایی که مد نظر یک سازمان رو لیست کردیم درسته باید. در استراتژی تجاری شرکتی هم حالا اینی که آقا اپروش یه شرکت اقیانوس قرمز باشه اقیانوس آبی باشه استراتژی ها هم لیست می‌کنیم یا لیست کردیم متوجه هستید فرض بکنید فرض بکنید در استراتژی‌های کلان شرکتی درسته استراتژی‌هایی که مثلا فرض ما لیست کردیم بگید آخرین نکته‌ای که هفته گذشته گفتم، آنالیسیس ماتریس استراتژی که منم گفتم، استراتژی رو بگید. یه چند بگه؟ بگید، همون تئوری‌ایو به من بگید. مثلا فرض به فرض یک پارچگی عمودی این گریه ای بود بله بله یک پارچگی عمودی بمبار یک استراتژی دو دیگه چه استراتژی؟ اوفریا نه نه رسوخ در بازار رسوخ در بازار توسعه بازار سه توسعه بازار خیلی کافیه آقا من همه‌شو بنویسم خب این چه استراتژی کلان شرکتی درسته؟ کنی استراتژی های شرکتی رو لیست میکنید استراتژی های تجاری هم در سطح سازمان لیست میکنید استراتژی های تجاری، بگید چند لیمونه بر اساس شرایطی که سازمانتون داره در حالا شما میخواید یا افضایش درامت داشته باشید یا کارش حزینه یا پردیلی رو داشته باشید چند تا استراتژی به من بگید من بگیستم بگید زیرساخت نه زیرساخت فعالیت استراتژی تمایز شرایط استراتژی ببین من کلش که میشه استراتژی تمایز زیرساخت میشه فعالیت چه استراتژی رو مثلا ما برای تمایز و زیرساخت در نظر گرفتیم ام ای اس مثلا فرض کنید یکیش میشه منیجمنت انفورمیشن سیستم ام ای اس دیگه سی دو مثلا فرض فرض مدیریت سی ارم می خوام ننسید نه یک دیگه بگی افزایش <تصفيق> کیفیت مثلا افزایش بهره درسته فرد. ها؟ ها؟ بله. ها؟ ما الان بونبانی نمونه در سند استراتژیکمون تا استراتژی استخراج کردیم. درسته؟ در سطح کوپر استراتژیز و بیزینس لول استراتژیست. اینو متوجه شدید که خیلی ساده دیگه هر هم چیزی که ما تو جلسه گذشته گفتیم حالا من این شش تا استراتژی رو میخوام ببرم تو شیت بالانس اسکور کارت بریزم که قابل اجرا و قابل کنترل باشه. چیکار باید بکنم؟ از اولی شروع می‌کنم. یک پارچگی عمودی. خب؟ این بالانس اسکور کات شیته ماست. درسته؟ یک بار چگی عمودی، کوپر لول استراتژی، بیزینس تاکتیکی یا کویک فیکس. کوپر لول استراتژی، دروسته؟ استراتژی کلان شرکتیه. ببینید در بلنس اسکورکار دقت میکنید شیتو داشته باشید. من گفتم بلنس اسکور کارت منظر داره. درسته؟ او چهار منظر چیه؟ یکی لرنینگ اند گروث دقت کنید فرشته ببینید پروسس پروسس کس و financial فاننش. درسته؟ financial چون رو گفتی finance یا financial؟ فرق نهب به مالی دیگه چون ما ما رو تعریف از finance خب؟ یه تعریف از financial ببین از میشه واحد مالی financial میشه فرایند مالی یکی فرق نمیکنه همون مالی در قیقت finance یا financial خب می تونی یک یهچ پارچه‌ای عمودی تو کدوم منظر میشینه؟ یک یهچ پارچه‌ای عمودی تو کدوم منظر می‌شینه؟ پروسس تو پروسس میشینه من اینو فیلترش می‌کنم. چه فیلتر می‌شاری رویش من؟ من فیلتر چیزیش رو هایدش بکن شو. نه هم هاید کن. منظره هم. وکتور خارج از خودت رو هاید کن این رو تو میو رو اونجاست؟ ای بالا، آئی با... هم آئین مردم هم اینکه فریز آه. فریز این اصطلاعاتی که آیتی من خب پس میشه، درسته؟ باید. استراتژی ما چیه؟ یک پارچگیه؟ عمودی تو کدوم منظر دو...? من نشوندمش؟ توی؟ پروسس پروسس نشوندم درسته؟ می بالا؟ هست همین سبزه یک پارچگیه؟ یک پارچگیه؟ عمودی درسته؟ اینا بیزینسه؟ نه که نه؟ کویک فیکسه، پس این را سیاهش میکنی خب؟ خ... یک پارچگی عمودی، گلز یک پارچگی عمودی چیه؟ هدف هستی یک پارچگی عمودی خب؟ هدف هستی یک پارچگی عمودی <متصفح> میتونه، حالا میتونه هر چیزی باشه من به عنوان نمونه میخواهم خدمتون بگم یک پارچگی عمودی، گلزش میتونه توسعه تجهیزات باشه خب توسعه تجهیزات درسته می بینید درست درست می بینید چه حلف پس یک باچه‌گمودی می تو توسعه تجهیزات باشه حالا میریم سراغ استراتژیک ترمس استراتجیک ترمس یعنی موضوع استراتژیک خب موضوع استراتجیک یعنی آقا بیایید توسعه تجهیزات قشنگ مفهوم سازی کن منظور در توصیه تجهیزات چیه؟ میتونه استراتیجیک ترداش اینجوری باشه توصیه تجهیزات برای واحد تولید و عملیات خب برای واحد تولید و عملیات این شه استراتیجیک روزش باید باز conceptualizeش که، مفهوم مصادش کردیم مرحله بعدی، objectiveش چی میتونه باشه؟ تو توصیه تجهیزات چه objective ما بودتونیم بذاریم؟ گفتم، هدف دفعه قابل اندازگیری دیگه، درست یاد هم؟ نه میزان توصیه، درصد توصیه، اینا رو میتونیم مشخص بکنیم مثلا، توصیه تجهیزات به مبلغ 3 میلیارد تومان. نمیتونیم بگیم مثلا چند دستگاه. چرا؟ چی میشه؟ به مبلغ سه تومان درسته؟ پس به خودتون دارم رو سازمان به سازمان فرم در چیزها به مبلغ سه ملیارد تومان تو لگی یا لیده؟ نه لگی لیده لیده درسته؟ لیده، لیده پس این من هایلیتش میکنم پس لید میشه، درسته؟ بله خب؟ یه خاله نه دیگه هست، یه ستونه دیگه هست، اینجا به نام measurements، یعنی نهبه یا اندازه گیری، okay. ها سه میلیارد تومان، سه میلیارد تومان یه نهبه یا اندازه گیری نداره دیگه، سه میلیارد تومان، سه میلیارد تومان میلی میسی، اینه، سه میلیارد سه میلیار تومار خب؟ درسته؟ نوشته مثلا فرض بفرمایید سال 1394 سال 1395 سال 1395 سی و نود و شیش. شیش خب؟ سال اول یعنی سال ۱۳۴ درسته؟ یک میلیارد تومان این درصد یک کار تو بگید همرا بیشتر در سرشمر ور میداریم خوب یعنی <تصفيق> سال یک میلیارد تومان در مجموع میخوایم سه میلیارد تومان توسعه داشته باشیم درسته سال اول یک میلیارد سال دوم یک میلیارد سال سوم یه میلیارد تمن تا اونجا متوجه شده چی شد؟ آره؟ مرحله یه داریم اونجا. خب دو تا ستون مونده؟ خیلی ساده پروگرامز باجت خب پروگرامز باجت خب ما وقتی میخواییم سه میلیارد تومان توسعه تجهیزات در سطح سازمان داشته باشیم چه برنامه بد داشته باشیم؟ چه برنامه بد داشته باشیم؟ بومال نمونه؟ اس نمونه خب استفاده نمونه میخوام خدمتتون بگم مثاله استفاده میگیرید استفاده استفاده مدیر پروژه خب درسته دو ارزیابی پیمانکار هم سه تشکیل جلسات ما بقیه این که بیایم سه میلیار تومان سرمایه بزاره کنیم در سازمان یه پیشنیاز هایی میخواد پیشنیاز افرش این که ها مدیر و پروژه استخدام کنیم پیشنیاز دومش دوباره یه پیمانکاران رو ارزا بکنیم پیشنیاز سومش صرف که جلسات مختلفی رو داشته باشیم که تصمیمگیری کنیم این چه برنامه ما یعنی بیایم سیکوینس کارو رو به عبارتی مینویسیم خ خب؟ حالا ایم شو برنامه ستون ستونه آخر بودجه ما اگه بخواییم ارزی یعنی سرمایه گذاری کنیم سه میلیارد تومان برای سازمان یه حزینه هم سازمان داره دیگه یه بودجه ای میخوام استخدام مدیر پروژه بخوایم انجام بدیم ممکنه ما دو میلیون دو میلیون تومان بعد حقوق بشه بدیم درسته؟ سالی چقدر میشه؟ دو میلیون تومان، یک دو سه، یک دو سه، زب دره دوازده، مساویه با 24 میلیون تومان درسته؟ بله. به ممکن ممکنه ازیابی پنگانکاران ما در مجموع 20 میلیون تومان هم هزینه داشته باشه خب؟ 20 و جلسات ما در مجموع 10 میلیون تومارم از اینه داشته باشه گفران بشینن زمان بزارن خب؟ تو 20 ملیون تومار برای چی نیست؟ 20 میلیون تومار ارز کردن برای عرضاقی پیمانکاران حقوق مدیر پروژه میشه 24 ملیون تومار عرضیابی پیمانکارانم 20 میلیون تومار جلسات هم در پیمانکارانم میخواییم بزاریم یه حزینه داریم میشه 10 میلیون تومار در مجموع میشه چلون چه پنجاب و چهار میلیون تومان این حزینهش میشه یا فوجهش میشه دقت کنید مگر مدیر پروژه سه سال نیست سه, سه سال میکنیم ما چیز کنیم دیگه راست میگه برای سه سال میشه سه خب چقدر میشه؟ سی و شیشه زفتر بیس میشه چقدر؟ سه و دو میتوم. نه بیست و نه، دو زبده سی و شیش چه 72 میزونی؟ 72 میزونی؟ 72 میزونی؟ به 20 میشه 82، به 10 میشه 92 میزونی؟ بوجه ای رو که ما برای پیاده سازی این پروژه یعنی برای پیاده سازی این استراتژی یک پارچگی عمودی در ساعت سازمان میخواه 92 میلیون تومانه من یه قضیه دیگر اینجا بهش اشاره میکنم بوجه که تو سازمان بسته میشه ورودی بعد از اسکور کارت بگیره یعنی اول سال که شما هدف گذاره میکنه برای کل سال بر اساس برنامهی استراتژیک هونه تو بلش اسکورک مرحله به مرحله مفهوم سازی میکنه به چه تارگتی میخوای برسی چه برنامه ای داری متوجه حالا برای پیاده سازی این استراتژی یا اجرای این استراتژی چقدر بودجه میخوای نهاد 2 میلیارد نهاد 10 میلیارد تو نمیذاره که نه اون بودجه اون سرمایه گذاریه تو برای این پروژه برای اجرای این استراتژی داره سازمان چقدر بودجه میخوای ایشون به این سمت میاد که من خب، اینو ما بهش میگیم، کانسپت بالا اسکور کار و برنامه ریزی بودجه در سطح سازمان. کامل داریم برنامه ریزی و اجرا و کنترل انجام میدیم. ببینیم یعنیم اجرا و کنترله هم داریم میکنیم و هم با این اعداد داریم کنترل میکنیم من مدیر پروژه رو که بیارم یا ماهی مدیر پروژه چون نه دو میلیون تومان بوجه دار افتیاره که ظرف سه سالم با سه میلیارد تومان سرمایه گذاری بکنیم جنرم حالا شهری نگاه بکنیم اون مسئله سال دیگه میخوام یه سوره بکنیم آفریم اجازه. آیا سوله شما توی این استراتیجی ها مثلا دیدی دیگه توی مثلا یک پاچه یک عمودی تو توی خرید سوله می خرید سوله رو بریم ها؟ دم شما بخواه شش، عزیز ببنیم. ببنیم. فرض کن، فرض کن یکی از استراتژی های شما یک پارچگی عمودیه درسته؟ یعنی پارچگی عمودی چی میگه؟ یعنی توسعه زیرساخت ساخت و کاهش وابستگی به تامین کننده. وقتی تو میخوای بری سوله با خرید یعنی وابستگی تو دارید به تامین کننده کاهش میده. درسته؟ خیلی خوب. یک پارچگی عمودی میشه کوپر لول استراتژی. گلتت تو چیه؟ خرید سوله. ها؟ بله. خرید سوله. به مبلغ چقدر؟ به مبلغه؟ ونش کن خرید سوله درسته؟ استراتژی تمز چی میشه؟ خرید سوله در کجا؟ خرید سوله در حومه در تهران درسته؟ خب چقدر مخواه خرید سوله رو انجام بدیم؟ من دقیقی یه چقدر؟ خرید سوله به مبلغه؟ هم گفتی یک تومن آره زیر یک تومن هم هست چهارسد تومن آره آره به مبلغ چهارسد میدیم چهارسد میدیم تومن درسته؟ بله خرید سوله به مبلغه چهارسد میلیون تومن اوکی؟ یه اینجا داره برگردن مقب خرید سوله رو من کوپراد استراتژی نمی‌دونم. کوپراد استراتژی خرید سوله؟ یعنی تو یک بارشی عمری اوکی. ولی ما چون استراتژیک رو نمی‌بشیم، مفهوم سازی کردی. میگی کوپراد استراتژی نیست. این یک کاری که ظرف یک سال میتونه انجام شه، ظرف 6 ماه میتونه انجام شه. درسته؟ میتون تاکتیک حتی باشه. نیازی نیست حتما استراتژی باشه. میذارم هم کوپریت استراتژی مسئله اینی خب، بگو ای لدی یا لیدر لیدر درسته این همیت نه بیای اندوز کریم به چه مبلغ چهارصد نیم به مبلغ چهارصد ها این یک ساله میخواد انجام بده دو ساله سه ساله چجوری؟ دو ساله دو ساله میخواد انجام بده یعنی بره. سال دویست میلیون تومن ها؟ ها؟ که شما نه مثلا سال اول دویست میلیون تومن مثلا میره زمینش رو میخره. سال دوم که 200 میلیون تومن بره ساختمانش رو بسازه. مثال میزنم. یعنی 400 میلیون شو تو دو سال میخواد تخصیص بده. بره. خب؟ سال اول 200 میلیون تومن ساله دووامم 200 درستسه؟ 100 ساله سه سال وامم که نداریم. بر برنامه ما چیه برای این قضیه؟ برنامه ما بس اصولن بخریه پیش نیازی داره دیگه عمو مشی که نمی‌تونی سوله بخری که یه پیش نیازی داره برنامه چیه؟ گرفتن وام گرفتن بام، دیگه؟ باً، گرفتن بام و پیگیری، درسته؟ بله دیگه؟ آقا ابراهیمی زمینه گرفتن بام و پیگیری، درسته؟ به نشکو، همه برنامه میشه این گرفتن بام و پیگیری چقدر زمان از شما میبره؟ در ماه چقدر زمان ازت میبره؟ یه روز، دو روز، سه روز، یه ساعت، دو ساعت، ده ساعت، بیس ساعت میره. نمیدونم ممکن شما ظرف دو سال به اندازه دو ماه باید زمان بذاری تا این سوله رو بخری دو ماه که تو زمان بخوای بذاری، سوله رو بخری یعنی دو ماه نباید کار کنی متوجه‌ای؟ یعنی بر تو شین پذیباستی کار کنیم تولید پول بکنیم ولی این کاری نمی‌تونه اجابت بیرفی دنبال زمین این دوما میشه هزینه. این هزینه چقدره؟ ممکن ده میلیون تومان باشه. ممکن 20 میلیون تومان باشه. خب؟ ما مثلا بنویسی 20 میلیون تومان. پس بودجه‌ای که برای خرید صورت تو برای اختصاص بدی 20 میلیون تومان. یعنی علاوه بر که 400 میلیون تومان بذاری کنار، دوما هم بیاد دوباره دیگه. یعنی میتونی بری شینی بپزی، نمیتونی بپزی؟ بعد آخیره 20 میلیون گرفتی خازیارو، ها؟ بریم صلام بعدی. روسوک در بازار، آب؟ روسوک در بازار. یه مسئله بزنم که یه کودک خیلی چیز بشه. آره روسوک در بازار رو بگیم روسوک در بازار. تو کدوم مزرع میشه روسوک در بازار؟ <تصفيق> نه مشتری. یه مشتری. مشتری میشه. روسوک در بازار چی میشه؟ ززمنی. مشتری. کمپلیت بیزینس استراتژی کویفیکس روزوک در بازار. Quake Quake Quake نه؟, نه. نه. روزوک در بازار شما میخوای یه... روزوک در بازار یعنی چی؟ یعنی یه محصول جدید شما یه بازار میخوای کریاتس بکنی. کمپلیت. کمپلیت چرا میگه کویفیکس؟ نه یه. بستگی به محصولشان نه تو وقتی روزوک در بازار یعنی <تصفح> محصول میخوای وارد یک بازار بشی؟ ایسه پیش نیاز میخواد انجامش میتونه تبلیغات میخواد تبلیغ در بازار میخواد تبلیغات مویتیم میخواد. یعنی؟ میکنی؟ نه. میشه کبرد استراتژی؟ روسوخت در؟ بازار. از ببینید من استراتژی کردن شرکت رو چطور؟ من تو گفتم کشک. این است بازار. روسوخت در بازار. گذاشتون شیر با روسوخت در بازار. این گفتیم نه نه اجازه بده اگر... روسوخ در بازار کپر لیول استراتیجیه حالا هدف اصلی ما از روسوخ در بازار چیه؟ مثلا فرض بفرمایید فروش محصول اکس فروش محصول اکس حالا هر محصولی خب محصول اکس درسته؟ اینجا در؟ بله در؟ بازار مشت به نمونه فروش محصول اکس در بازار مشت یه محصول جدید ما خلق کردیم میخوایم تو بازار مشت بفروشیم متوجه منظور من هستیم؟ خب استراتیجیک یعنی به موضوع استراتژیکش رسوخ در بازار مشهد رسوخ خب اس استراتژیک اون چی میشه فروش یا بازار مشهد به میزان به میزان... خب؟ پنده درست نه تو درسته نگی؟ فروشه بیگه آه. تومان بگی؟ آه. به میزان چهارسنه پنجاه میلیون تومن درست؟ این میشه استراتیجی آبژکتیف لگی یا نیده؟ لگی فروش لگه درست خوبجی اصلیه نقدی اندازه‌گیری ما فروش چجوری اندازه‌گیری می‌کنیم مثلا می‌خوام 450 میلیون تومان فروش حاصل شده برای سازمان چجوری اندازه‌گیری میشه مثلا 2000 تومن ها درامده درامده سوده سوده. ها بتون کیلو عدد درآمد سازمان دیگه میزان درآمد در مقابل مشعل ها سود خالص نه, نه. فروش مثلا بحث سود خالص نداریم ما می خایم محصول در بازار مشت فروشه نه به میزان فروش میشه میزان درآمد ساده است. میزان درآمد خب میزان درآمد میزان چه خب میزان درآمد میزان درآمد درسته سال اول صد و سال دوم صد و سال ثبام هم؟ هم برای رسوخ در بازار چیه؟ مثلا فرض بفرمایید تبلیغات خب؟ دیگه؟ شرکت در نمایشگاه؟ خب؟ استخدام بازار یا؟ خب؟ استخدام فروش رفورو شکریم کافیه خب؟ تحقیقات بازار اینا میشه برنامه‌های ما ما اگر رو رسوخ در بازار داشته باشیم پارا رو عزب بکنیم تحقیقات، شکریم، در استفاده استخدام بازار یا تحقیقات بازار درسته؟ بودجه شاغل میشه ممکن برای تبلیغات بیا 100 میلیون تومان نه 50 میلیون تومان نمایشگاه 20 میلیون تومان بازاریا به ما ظرف سه سال 20 میلیون تومان هزینه برای ما داره در مجموع بودجه ما مثلا ممکن بشه 80 میلیون تومان وقتی این می آره دیگه ملیون هشتاد ملیون هم از این چون سوخت در بازار متوجه شدی داستان چی شد دوستان الان بحث مدیریت استراتژی یه مقدار براتون ملموس هست؟ ها جاافتاد دراتون توسعه بازار توسه بازار تو کدوم منظر میشه؟ کلام مدیریت ها تو که دو منظر میشینه؟ منظر مالی میشینه، فرایت میشینه، مشتری میشینه مشتری توسعه بازار درسته؟ کوپریز هم هست گلز ما چیه؟ افزایش بازارها بیتونه گلز ما باشه، درسته؟ افزایش بازارها درسته؟ استراتیجیک تنز اون چیه؟ صنغ فروش در بازار مشهد و تهران بازارهای بازارهای مشهد و اصفهان و تهران درسته درسته چند تا بازار شد سه تا سه خب استراتژی اجکسیم زمان توسعه بازار چند تاست؟ سیتار بازار. به میزان سه عدد. درسته. به میزان سه عدد. آه؟ سه تا بازاره. درسته. یا لید؟ لایک. درسته؟ موسیقا. بله، توسعه بازار نیده نحوه‌ی اندازه گیری تعداد بازار تعداد بازار خب؟ خب؟ ممخشید سال اول یه بازار یه بازار یه بازار در مدره چقدر میشه؟ سه تا بازار درسته؟ مثلا مثلا نه من بایدی فالت دارم مینیمیستم ممکن تو بگه سال اول یه دونه مثلا دو ساله هستم تعریف کنیم ممکن سه تا بازار نماشه شیش تا بازار باشه بس سال اول سه تا بری سال دوم دو تا بری سال آخر یه دونه بگیم مهم نیست؟ برنامزه بازم مثلا میتونه تبلیغات شرکت در نمائش ها، بازار یا ببینید من رو درستش کنم توی بی شرکت به شرکت میتونه مثلا تفاوت داشته باشه یا نه میشه ثابته. میشه تفاوت داشته خب برای توسعه بازار ممکنه برنامه‌ای که مثلا ما مد نظرمون باشه ممکنه مد نظر باشه مثل هم قضیه بالایی باشه، تبلیغات شرکت در نمایشگاه تقیقات بازار و غیر و احداث مثلا اختصاص نمایندگی هم بتونه باشه. خب، به دوباره بود هم دوباره بودجه بشمیت. قضیه رو متوجه شدی چی شد؟ عفواش بهره وریم من بگم شما متوجه شدی الان سه فت ساده است. ازشینیوی رابی میدی کنم روزا هم گرم یه داره فرقه ها افزاژه بره بریم تو استراتوژه های کجاری جنراتوژی درسته؟ تو کدوم منظر میشینه؟ افزاژه بره بریم شیده نه افزاژه بره بریم تو پروسسه. درسته؟ البته مهم نیست شما تو چه منظری بذارید یه تقسیم بندی رو اشتباه بذاری احتفاق خاصی نمیفته میشه اینجون با لاتینه یک خود من گفتم گیب شدم سرم این چیده شد اینه فکر کنم تر اینه گیب من آه. کنم فارسی دارم مینویسن که نه چیزا شد با هم بالا شو میگی؟ آله نمیتونیم فارسی کنیم به شما الان گولز goal... و اپجفتیبز و تارگیتز متوجه هستی؟ این تو فارسی همش میشه هدف بروس میدونی به خاطر اینه که نمیشه کپید استراتژی استراتژی کلان شرکتی یا استراتژی تجاری به چون بعضی نمیشه تا خاطر می دیگه من اونا رو لاتین گذاشتم خب ما افزش بر برای توی تجاری مگه می ما توی استراتژی تجاری, تجاری بله بله, بله. آره مشکل الان شما می که توی توسعه فرایندهست من لده... گفتم تو چه منظری ببینی تو فرایند چه که به استراتژی کلان شرکتی تجاری داره یا مرزن مشتری باید ببینی یا فرایند ببینی یا مالی ببینی یا مالی ببینی یا روشت و ببینی خب تو چی فرایند درست نه؟ خیلی خب های تجاری یا شرکتیه تجاریه درست یا نه؟ تجاریه ابزایشه؟ درسته؟ نه تجاریه ابزایشه درسته خیلی ما از این افزایش بهرهبری چیه؟ هگف هم... از این افزایش بحروری چیه؟ من، بردن سود افزایش کارایی افزایش کارایی پرسونل یا بحروری پرسونل درسته؟ افزایش بهرهبری پرسونل کو خب. ظرف سه سال به مدت سه سال ما میخوایم بقیه در یه پرسونل بدیم نه چرا سه سال گذاشتم؟ همینجوری چما پنج سال، بذار دو سال همینجوری نوشتم. خوب استراتیجیک تنس؟ استراتژیک تنس. قهروهری یعنی چی؟ قهروهری یعنی چی؟ موضوع استراتژیکو بعد بریم س دیگه. قهروهری یعنی چی؟ کارایی کارایی و اثر بخشی. ها؟ لیده لیده خب هدف از بهره بهرهبری چیه؟ بهره بهرهبری پرسونل خب به میزان به میزان شست درصد در ظرف سه سال 60 درصد بهرهوری پرسنال ظرف سه سال افزایش پیدا بکنه. خب؟ سه میشه. ببین گفتم لگ میشه خروجی اصلی سازمان. لید میشه پشتیبان. بهرهوری پشتیبانه. بهرهبری بره بالا سود میره بالا سود میشه لگ بهرهوری میشه لید. خب نحوه اندازگیه روی بحر وری پرسونل به چه صورت در سازمان ها؟ نحوه اندازگیش نحوه اندازگیش میشه تو خروجیی که میدن دیگه سودشیه، سودش شرکت میشه آفری، می‌کنن اصلا سودش شرکت باشه شاید شاید شما، آفری، خیلی نکته خیلی خوب شاید شما بحر وری پرسونل رو با سود شرکت بتونید بسنجید با درآمد شرکت بتونید تخفی اندازه گیری با بهره وری پرسنال اندازه گیری مثلا اندازه گیری کار مفیدی که انجام میدید مثلا حالا های محتوای بهترین روش درصد سود, خالصه. سود خالصه. خالص خب نحوه اندازه گیری درصد سود خالص خالص یعنی شما یه است تو یک خط تولید دارید اینو کنترل میکنید حالا آره ما قولین یه مثال بزنیم دیگه چون نلشیم بهره وری پرسونل خط تولید میشه برابری پرسونل یه سازمان در بچمون در مجموع یکی تولید میکنه یکی نمیتونه بفروشه به سود نمیرسه تولیده بهره وره ولی فروش بهره وری نیست ولی سازمان اگه در مجموع بخوایم به سادگی سودش میسنجیم حالا اینجا تولید خوب بوده فروش خوب نه بوده من این سازمان رو در مجموع بخواهیم به سرجه سودش میشه این وقت ما داریم این چیز انجام میدیم که بروری همه شو بره بالا دیگه خب درصد سود خاله چشمی اندازه گیری میشه دوست عزیز درامت میخواهیم چه؟ مساویس با دلوقت. درامت درامت سود نه نازیزم من سود خالص تقسیم بره تقسیم بره درآمد سود خالص تقسیم بره درآمد خب <تصح> سود خالص تقسیم برای درآمد درسته، نحوه اندازگیری خب، بهرگره چند درصد میخواییم ببریم؟ شست درصد درسته؟ زنفه سه سال سال اول بیست درصد سال دوم بیست درصد سال سوم بیس, بیس درصد درسته؟ برنامه تو برای این قضیه چیه؟ برنامه مختلف میتونه باشه ممکنه یه برنامه ای که باشه دادن پاداش یا پرداخت پاداش پرداخت پاداش درسته بر اساس راندمان متدرصد سوز بر اساس راندمان نه دیگه پرداخت پاداش هم شریک شون باکنن دیگه آره دیگه برای اون اساس دیگه ها بر اساس درصدی از سود میخوان پادر به راننما دیگه آره این به یعنی با دادن پاداش پرسونل نمیخوام درگیری بکنی که راندمانشون بره بالا خب پاداش چقدر مثلا برای سازمان هزینه داره زرف سه سال؟ ممکنه سالی، مثال دارم میزنم سالی صد میدیم تو من پاداشتون بشه خب سه سالش پیشه چقدر؟ سی ست براتون تو، جا افتاد جو بوسه ما برای شما کجا جان رفته؟ من برای توضیح بدم. نه جفت دقیقه. خب رویت کنم بعد جلسه. این چرا توسعه تجهیزات هم میشه به عربی بره بالا؟ آره تو با اونم میشه. آره. آره. اون وقت اگر اونجور استراتژیک تم زد تو بعد اواص کنه. ممکنه بنویسی بحث ببری. مثلا چیزت باشه بگو. استراتژیست باشه استراتژیک تم زدش توسعه تجهیزات. آفرین. ببین یه خروجی خیلی مهم که شما از این شیت میگیری، دو تا خروجی میگیری یکی اینکه رو به زبان قابل درک و قابل اندازگیری ترجمه میکنی یه خروجیه، یه خروجی خیلی خیلی مهم به برنامه و پیچه این اجرا و کنترل افراد سازمان هم ببینم نه، فقط دست مدیریت سازمان، به نفت مسلمه با دپارتمان ها شیر میکنیم اونی که برمی‌گره به توسعه تجهیزات به مدیر واحدت میگه آقا تو تارگتت اینقدره بعد نبت من تو من بودجه در اختیارت میذارم بعد ظرف سه سال 3 میلیارد تومان گذاری برای سازمان انجام بدی. دیگه عوامل آرمانی رسالت. این بعد از کارت حتما باید تو شیت باشه. نه میتونه هرجوری حالش تو شیت باشه ساده‌تره دیگه. شما اگه تو شیت تو اکسل شیت دارید پرینت بزرگم میگیری؟ آب میکنی تو سازمانارت بزن تحت عنوان تابلو کارت ارزابی امتیاز متبازه یعنی برنامه ریزی اجرا و کنترل استراتژیک در یک تابلو دستت اوله داستان چی شد؟ ها؟ چند درصد؟ هایت با او پشت نه باید نه دست رو بنده بود آدم یه باید بشین یه بار با تمرکل دوره دوره اینا رو باید شد خدا خوب مثل که شما کنار یه راننده بشینی یه آدرس رو آدرس خون بری تا زمان که خود مثلا ما یه جای رو بارها رفته بودم تا کسی به همیشه کنارم بود توجهه نمیکردم پریشتب میخواستم برم شیش بار زنگ زدم چون خواستم اولین بار خودم به تنهایی برم آره. ولی خب رفتم دیگه تا آخر رو یادم نمیره درست این تمرکز آدم با خودش داشته خیلی دو دوستان برای جلسه آینده برای جلسه آینده جلسه آینده رو خودتون آره ببین من این دو جلسه که بیشتر در خدمتون نیستم اما <تصفح> نه. من دو جلسه دیگه رو خدمت رو جلسه که چی؟ یه دوله دیگه نه با من دو دو داریم. <تصفح> دیگه <تصفح> دیگه <دو دو> باید کلاس داره جلسه پروژه برای پروژه میام برای رو خب دیگه بفرمایید برای جلسه آینده یعنی بعد از تحصیلات که آوردی. عدم ایشی که استراتیجیکی خدمتون دادم و باز بفرمایید <تصفيق> از این نشونتون برم <تصفيق> این مقالات بخونید و مقالات خیلی جالبیه اونم مقالش رو من توش یه بقاله ناشتم به نام شرکت سونی خب؟ بله جلسه آینده یک پاورپوینت سلایت درست کنید یک پاورپوینت درست کنید اسمش رو سند استراتژیک سونی. خب سند استراتژیک سونی. فرض بکنید، فرض کنید شما به عنوان یک مشاور مدیریت استراتژیک میخواهید برای شرکت سونی سند استراتژیک بنویسید. درسته؟ اعدادتون مسلم فرضی خواهد بود تحلیلتون هم فرضی خواهد بود متوجه هستی؟ و شرکتی یا برندی خیلی معروف تو اینترنت هم تو دلت بخواد ازش اطلاعات هست درسته؟ هم. خب؟ برای شرکت سونی سوات رو انجام بدید اوکی؟ ماتریس جی ای رو انجام بدید توزو انجام بدید کیو اس انجام بدید خب برای شرکت سونی اسپیس رو انجام بدید گراند رو انجام بدید بی سی جی رو انجام بدید خب الانیسیس ماتریکس استراتژی های تجاری بر اساس تدوین استراتژی های تجاری بر اساس مدل پورتر و ده تدوین برنامه بی نمیده ایچه تازه این ها آمد توی اکسل و این پیج آره آره آره دو اکسل دو اکسل دو اکسل تو, تو اکسل create می کنیم تو پاورپوینت تو اکسل به وجود میاریم و تو پاورپوینت کوپی پیس می کنیم تو پاورپوینت آره حتما بعد نسی ثانی هم تو پیسی جا آره من یه مقاله گذاشتم یعنی چه شما برای شرکت دیگه انجام بدید؟ انجام بده برای شرکتی. یا سازمان خودت. ولی من مد نظرم اگه انجام بدی مشکل خاصی نداره. آره مشکلی نداره. ولی چون من خب بعضی از بچه‌ها خب تو شرکت خاصی نیستن. بخاطر همین من سونی رو گفتم. اگه می‌خارین شرکت خودت هم انجام بدی مثلاً اس کوهت. خب؟ معلم مقاله شرکت سونی هم اینجا گذاشتم توی پاورپوینتتون توی چی توی مطالبتون هست. از این می‌تونید کامنت بگیرید. اعدادتون هم فرضی باشه. تحلیلتون فرضی باشه. ما فقط دنبال این سیکرونسه هستیم که دستتون بیاد چه آقا، نوشتن سند استراتیجیکه من خیلی خلاصه تو ده پله نوشتمش تو ده گام نوشتمش اینو راحت بشینید بنویسید چون ما انشاءالله بعد از تشریف آوردن بگیم یک بحث مدیریت استراتژیک دستتون اومده باشه اینا بهش میگن پیک شادی باش نه هستیم نه پیک شادی، همیشه میذاشتیم چیز سیزده بدر انجام می برد؟ آره حم... نمیشه سیزده بدر انجام دادیم نمیشه, نمیشه نه؟ زیاده بدر خب، هست هستش؟ بسیار عالی آلده سال خوبی داشته باشید؟ سالی همراه خواست سلامتی و سربلندی و تندرستی موفق و محفظ باشید بایش بکنم؟ بایش بکنم، محفظ باشید آده بس، حسنم، همچنین برشو موفق محفظ باشید سلاماتیاتون مرده